بسم الله الرحمن الرحیم بنا می خداوند بخشنده مهربان الف لام می علی احفظن الناس این یترکو این یقولو آمننا و هم لا یفتمون مردم پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان داریم گذاشته می و ایشان آسماویش کردن نمی بگمان ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم و این را نیز امتحان می کنیم باوجهت علم خدا در مورد کسانی که راست می و کسانی که دروغ می تحق یابد آیا کسانی که اعمال بد بهجا میآورند گمان کردند از حوزه قدرت ما بیرون خواهند رفت که بد داوری می کنند. من كان يغبو لقاء الله فإن أجل الله لآد و هو السميع العليم کسی که امید الله دارد باید در اطاعت فرمان او فروکتار نکند زیرا زمانی را که خدا تعیین کرده سر انجام فران و او شنفا وفدانا و من جاهد بین نمان جاهد نیست. این الله لغني نعم العالمين. کسی که جهاد و تلاش کند، برای خود جهاد می کند. چرا که خداوند از همه جهانیان دین است وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفْرَنُ عَنْهُمْ سَيْعِئَاتِهِمْ وَلَنَجْدِ أَنَّهُمْ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهان آنها را می و آنها را به بهترین اعماری که انجام اند پاداش می دهیم و الْإِنْسَانَ الانسان حُسْنًا حسنا و اینجا هدا کلی تشرک دلما لنس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعكم فانبعكم بما کنتم ما انسان که پدر و برای آنها تلاش کنند که برای من شریک قائل شوی که به آن علم نتوانی از آنها اطاعت مکن بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام میدادید خبر خواهم تا. کسانی که ایمان آوردند و امر صالح انجام دادند آنها را در زمره صالحان وارد خواهم کرد و من الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوزيت الله جعلت سنه الناس كعذاب الله فَإِذَا أُذِنَ لَكَ وَجَعَلْتَ اسْمَكَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ در میان مردم کسانی هستند که می گویند به خدا ایمان آبسته ایماند. اما هنگامی که به خاطر خدا از سوی دشمنان مورد آزار قرار می گیرند، دشمنان را همچون عذاب الهی می شمارند. اما هنگامی که پیروزی از سوی پروردارد بیازد می گویند ما هم با شما بودیم. آیا خرابند به آنچی در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَاقِقِينَ مسلمان خدابند مؤمنان را می شنافد با منافقان را نید میشناسد. ثواب به مؤمنان شيء گفتند شما از ما پیروی کنید ما گناهانتان را بر خواهیم گرفت آنها هرگز چیز از گناهان اینها را بردوش نخواهند گرفت آنها دروغ میگویند ولا يحملن اقلهم واقلم مع اقلهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون آنها بار سنگین گناهان خیشرا بر دوش میکشند وبار خوی سنگینی دیگری را اضافه بر بار خوی سنگین خود بر روز قیامت مسلمان از دروغ هایی که می‌بستند فعال خواهند شد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبت فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاقذهم سوفا ووبالهم ما نه را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها تینجاه کم یک هزار سال درنگ کرد اما فرانجام طوفان آنها را فرو گرفت در حالی که ظالم بودن و اصحاب و ما او و اصحاب کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیت برای جهانیان قرار تابید ما ابراهیم را فرستا دیم. هنگامی که به قومش گفت خدا را پرستش کنید بس او بپرهیزید که این برای شما بهتر است أكبر بداوني. إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يمنكون لكم رزقا فالتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له شما غیرت خدا فقط بطه ها را می پرستید و دروخت هایی به هم می بافید تسانی را که غیرت خدا پرستش می کنید مالک رزق شما نیستند روزی را نزد خدا بتلبید و او را پرستش کنید و شکل او را به آورید که به سوی او باز می کسید. وَإِن فقد كذب من قبلكم وما إلا اگر شما مرا تکذیب کنید امتهای پیش از شما نیز امبرانشان را تکذیب کردند وظیفه فرشت‌های خدا جز ابلاغ آشکار نیست اولا يرو كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير او چه ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز میکند سپس باز میگرداند این کار برای خدا آسان است قل سيروا بالارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله مسئته الاخره ان الله در زمین سیر کنید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده سپس خداوند جهان آفرینش را ایجاد میکند بی گمان خداوند بر هرچی است. هر کس را بخواهد مجازات می کند و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار می دهد و به سوی او باز می کردید وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى شما هرگز نمیتوانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان فرار کنید و برای شما جز خدا بلی, یا بلی و یاوری نیست و الذین کفروز آیات الله و لقائنی رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم کسانی که به آجات خدا بلقای او کافر شدند از رحمت من معیوسند بابراوي انخا اساب فما كان جواب قومه الا ان قال تفلو او حدقوا بان جاءه الله من النار ان في ذلك لايه اما جواب قوم ابراهیم چیزی جز این نبود که گفتند او را به قصد برسانید یا بسوزانید ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید در این ماجرا نشانه هایی برای کسانی که ایمان می آورند وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا موجة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يذكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ابراهیم گفت شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده اید که موجه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد سپس روز قیامت هر یک به دیگری کافر می شوید و یکدیگر را لعن می کنید و جایگاه شما آتش است و هیچ یار و یابری نخواهید داشت فا وقال ان مهاجر الى ربی انه هو العزيز الحكيم لوط به ابراهیم ایمان آورد و گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او عزیز و حکیم است و وما بإبراهيم إسحاق ويعقوب ويعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وما بإبراهيم إسحاق ويعقوب رابخشيدين و در میان نسل او نبوه و کتاب را قرار دادیم پاداش او را در دنیا دادیم و در آخرت از خونه ولوطا اید قال لقومی اینکم لتأتون المحشت ما بها من احد من فرستادیم هنگامی که با قوم خود گفت، شما کار بسیار دشتی انجام می‌دهید که احدی از مردم جهان قبل شما آن را انجام ندادند. انکم لتأتون الرجال وتقتعون الذليل وتاتون في ناديكمهم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا آیا شما به سراغ مردان می روید و راه تداوم نسل انسان را قطع می کنید و در مجلستان اعمال منکر انجام می دهید اما پاسخ قومش جز این چیز نبود که گفتند اگر راست می گویی عذاب الهی را برای ما بیا با. قال رب انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْجِدِينَ لوت ارزکار پر مرا در برابر این قوم مفتد یاری فرمان وَلَمَّا رسلنا رُسُلُنَا إِرْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُذْلِقُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَوْيَةِ انگامی که فرستادگان ما به سراغ ابراهیم با بشارت آمدند گفتند ما اهل این شهر آبادی را حلاق خواهیم کرد چرا که اهل ان ستم کرند قال این فیها لوطا قالو نحن اعلم بمن فیها لن نجیینه و اهله ایلا من ابراهیم گفت در این آبادی لوت است گفتند ما بکسانی کسانی که در آن از آگاه ترین ما او به اش را نجات می دهیم جز همتر را که در میان قوم باقی خواهد ماند. ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن اننا نجدك واهلك من الغابرين هنگامی که لك فرسادگان ما نفس دوست آمدند از دیدن آنها اندوهگین شد گفتند نترس و غمگین مباش ما طبخه خانوادا تا نجات خواهیم داد جز همسرش را که در میان قوم باقی می‌ماند. ان هذه من السماء بما كانوا ما بر اهل این شهر به آبادی عذابی از آسمان به خاطر فتقشان رو خواهیم دید ولقد منها ما از آن آبازی نشانه روشنی و درس عبرت برای کسانی که تعقل می کنند با وائل مدن اقاهم شوعبا تقال اقوموم حد الله او الومل اخل واللتز في الارض مفسدين ما را من خدا را بپستید و با برود بازث پسین امید بار باوشید و با زمین فساب نکنید. فکذبونو فأخذتهم الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاسمين آنها او را تخذیب کردند و به این سبب زلزله آنها را فرو گرفت و در خان خود برو در افتادند و مردند و عادم و, و تَبَيَّنَ لَكُمْ قد تبین و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عنی السبیل و کانو مستبصرین ما تایفه ای آز و سمود را نیز حراب کردیم و مساکن ویدان شده ی آنها برای شما آشکار است شیطان اعمالشان را برای آنها زینت کرده بود لذا آنان را از راه باز داشت در قول که می وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين قارون وفرعون وهامان جانين هلا موفا با دلویل روشن با سراغ آنها آمد اما آنها در زمین بر فریدویی کردند ولی نتانستند بر خدا پیشی گیرند فکلا به فمن ام من ارسلنا و من ام من من خسكنا به الأرض ومنهم من خسكنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ماوهر يكت عنها رابضنا هونشان جريف بر بعضی از آنها توفانی توان با خندی زفر سادیم و بعضی از آنها را سیطه آسمانی فرو گرد و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را خواف کردیم خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ولی آنها خودشان برخیشتن ستم نموگرد مَنَ الَّذِينَ اتخدو مِن دُونِ اللَّهِ کمتن که غیر از و این که غیرت خدا را آبیاری خود برگزیدند همچون که خانه برای خود انتخاب کرده و سازترین خانه ها خانه انکبوت است اگر می‌دانستند. إن الله يعلم ما يدعون منه من شيء وهو العزيز الحكيم بيگمان خداوند آن چی را غیر از او میخوانند میداند و او چه کار نافذ و حکیم است تلك الامثال نضربها لنا وَمَا يَعْقِنُهَا إِلَّا الْعَالِمِ این ها مثال هاو که ما برای مردم نیزنیم بچود اولیمان انزو تاکتانی کنن خلق الله السماوات والأرض بالحق این ذلك ذالک لآیتا للمؤمنین خدا باند آسمان بهق أوفرين، فين أوجتني برأج من منان. أتلمع أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنها عن الفحشاء والبُكَّ، ولبكوا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. آنچه را آن کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار که نماز از دشتی ها و منکرات باز می و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دیدید ظلمون منهم و بالذی انزل اینا و انزل اینا و انزل اینا و, الاهنا و, الاهنا و, و با اهل کتاب جز برابش که از همه مجادله مگر کسا و از ظلم و با انها بگوید ما با تمام آنچه از توی خدا بر ما با شما نازل شده ایمان داریم معبود ما با شما یکی و در برابر او تسلیم هستیم و کذالک انزلنا الیک الكتاب فالذین آتیناهو الكتاب اینون به و منها وما یجح این گونه کتاب را بر تو کردیم کسانی که پیش از این کتاب آسمانی و آن داده این به این کتاب ایمان میآورند و بعد از این گروه نیز به آن مؤمن می شوند و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند و ما کن تثلّم قدر له من كتاب ولا لا تخصّه اذا لوضاب المصلون تو هرکس قبل از این کتاب نمیخونی و بعد از خود چیزی نمی نوشتی مابعد که در ساده ابتسال سخنان تو فهرستان شک با کرده خون بل هو آیات بينات في صدور الذین اوتوا العلم وما یجحل بآیاتنا الا الظالمون بلكه این کتاب آسمانی مجموعهای از آجات روشن است كه در سینهٔ صاحبان دل جای دارد و آگات ما را جز ستمگران انكار میکنند وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نبیر مبین گفتند چرا معجزاتی از سوی فرورد بر او نازل نشدند بگو معجزات همه نست خدا من تنها انتا کننده آشکاری خطابا اولن يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يسلا عليهم ان في ذلك لرحمة وذکر لقوم يؤمنون آیا برای آنها کافی نیست که این کتاب آسمانی را بر برسنازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود لب این رحمت و ذکری برای کسانی که ایمان می آبرند قل <تصفح> کفا دلله زیمی و وَالَّذِينَ آمَنُوا بالباطل وَكَفَرُوا بالله أُولَئِكَ هُمُ الْخَاتِرُونَ بگو همین بس که خدا میان من و شما گبان آنچه را در آسمان ها و تمینه می داند کسانی که به باطل ایمان آوردند و به الله کافر شدند زیان کاران باقی هستند وَيَسْتَعْجِرُونَ كَبِالْعَذَابِ ولولا أجل أَجَلٌ مُسَمَّنْ العذاب الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا آنها با عجلات و عذاب را می سلبند موعد مقرر تعین شده بود عذاب الاشی به آنها می آمد این عذاب به طور ناگهانی بر آنها ناظل می شود در حالی که نمیدانن ج آنها با عجل از تو عذاب می میکن در حالی که جهنم به خافران احافه داردند یوم یغشاه هم العذاب من فوتهم و تحت اردنهم و یقول روحو ما كنتم تعملون عذاب علاقی آنها را از بارای سر و پایین پا می و به آنها میگوید: بچشید، آنچرا عمل می یا آمنون إن أرض واسعة فإن أي بندگان من ایمان إيمان آبستي زمین من وسیط تنها مرابطه استي كل نفس الموت ثم إلينا ترجع هر انسانی مرگ را میچشاند سپس به سوی ما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَ الْأَنْهَا وَالْقَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ تسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند انها را در برسه های از بهش جاو می بگید کنافا در زیر آن جوید، جا به در آن خا هندماند. چه خوبه است؟ حال داشته، عمل کنندگان. الذين صلوا على ربهم يتوكلو وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك و هوا الزمیع العلیم همانها که سبر میکنند و به پرباردگارشان سبه کل می که بسیار جنبندگانی که قدرت ندارند روزی خود را هم کنند خداوند آنها را و شما را روزی می و و عوض شنبا به دانا وَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَكُولُ آنها بکرسی و زمین را آفریدد و خورشید و ماه را مسخر کرده اند. جاند الله پس با این حال چگونه منحرف نیشبانیش اللہ يبسو ترزق لين يشاء من عبادہم ويكذب وله إن الله بكل شيء علي روزی را برای هرکس از بندگانش بخواهد کسر دنیا نزد و برای هرکس میخواهد محدود میشود بیکمان خداوند به با همه چی دانا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَادِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْزُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْتِنُونَ وَأَجَرَ ازْنَهَا بِقُرْسِي شَكَتْ يَزْ آسْمَنْ آبِنَا زِلْكَارِكَ و با آن زمین را بعد از مردنش احیان نمود میگوگم الله به گفت تاوگش مخصوص خدا اما اکثر آنها نمیدانند و ما هذه الدنيا إلا له و لعب و إن الدار الآخرة لهی الحيوان لو كانوا يعلمون إن زندگي دنيا جزء له ودعيد چيزيني بعد تنتكي باقي سراوك آخرتا أكت أن خار ميدان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الزين فلما نجاهم إلى البر إذا هم هنگامی که سبار برکشتی شبان خدا را با اخلاص میخواند، اما هنگامی که خدا آنها را به خشکی رساند و نجات داد با مشرک می شوند بما اتیناهم فسوف یعلمون بگذار اوگیی را کهدان هاداین انکار کنند و از لذات زود زندگی بهره بعد اما به سوی خواهند خفند اولم یارو ان جعلنا ح من حولهم. اسدیدا یقیلی یؤمنون وبنعمت الله یشکورون آیا ندیدند که ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم را در اطراف آنها نیرو بالگند آیا با باطل ایمان میآورند و نعمت خدا را کفران می کنند ومن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوا للكافرين چه یا حق را از آنکه به سراغش آمد تصدیق میکند او یا جایگاه کافران در دوزخ نیست و, و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم صم لنا و ان الله لمعالم المستنین که در راه جهاد کنند مسلما هدایتشان خواهیم کرد و خدا باونی که